سیلی شیری, سیلی شیری نویسنده کریم خودسیانی بازیگران امیر قفارمنش در نقش‌های بردیا و پوریا رمضانی. خیلی از جوونی می‌بینم به شرطی که ذنب گیرمی چه حرفیه مادر من اول صبح ناشتایی یه چیزی داره میگی برای خودت. نفیسه روشن در نقش خانم محمدی معاون با. من غضباً بچه نیستم که مسئله کاری با بشه که روابط شخصی و عاطفی مون عادی بگیرم. خاطره مهربان در نقش شیرین مفیدی کارمند بود. آقای رمضانی، ایشون کارت ملی ندارن، می‌خوام که کارشون انجام بشه. گیتی مهینی در نقش مادر رمضانی‌ها. همزمان با هم هر امسال با کنی. سال دیگم چی خدا بهتون بچه میده چراغ خونتون روشن میشه کارگردانان <تصفيق> امّار باستان فرد و محمد باغر آبادی موسیقی امیر شهبازیان تهیه کننده علی محمدزاده شهر حوشی از برف عربا بوجوه بانک کارت گواهی ناموی خودشو از شیلین مفیدی که کارمند بانک پس میگیره و تشکر میکنه. یه جوری ماسپاری از کن بردید. برای کار با اینکه فقط کارت ملی اعتبار داریم. متاسفم. یه موقع آبجی این گوانی ها رو نی روز سنگ میداشتی آب میکرد. یه کاریش بکن. من باید تا اون شهر برم به خاطر اون کارت. یه لحظه اج خدایش خیلی از جوانیت ببینی بوریا رمضانی کنار موتور خرابش ایستاده و نگاهش به مادر خیلی از جوانیم میبینم به شفت که زن بگیرم چه حرفی مادر من اول صبح ناشتا یه چیزی داری میگی برای خودتا دقیقا همینه باید زن بگیری تا خوشبخت بشی آقا برده خیر بشی ببین دادشت قول داده امسال تا آخر سال شله ازدواج کنه اون آدم حسابیه فرق داره با من. توریا به کارش توی موتور ادامه میده. حسابشو با من یکی نات. اتفاقا من حسابشو با تو یکی میکنم. نمیشه دیگه مادر من نمیشه. من الان پول ندارم که اون رئیس با این که من دستم به خاطر اینکه داداشت به تو صد بار تنا گفته من وام میگیرم که با هم دیگه ازدواج کنی. یعنی هم تو همون هم زمان با هم هم امسال با ازدواج کنی. س... خدا بهتون بچه میده چراغ خونتون روشن میشه. دیگه چه بهتر از این؟ اگه از دولتی سر ارث شما چراغ خونمون نوتو تو روشن میشه مادر من بس کن بابا این چانس داشتم این موتور رو ششم خانم محامدی معاون بانک با شیرین مفیدی کارمند بانک مشغول بحث کردن است. آخی مرده با این سنش با این من باغچه‌ای که تو دستش مگه میدونه دیگه به کفشش داشته باشه منم دارم خوش خوشخیالی ما ماه به ماه پس میدم من میگم قبول نکن حالا خودت میتونی هم از آقای رمضانی کسب تکلیف کنی نه نه اصلا نمیخواد خودم درستش میکنم شهرام و پیمان با ماشین تو شهر گشت نیسند ببینم آبالا نکنه گنج من که تو کار ما خبر نداره. نه بابا تو دوها کن من عروسی رو بگیرم مهم بریم سریه سخف بخیش دیگه بربونه قدت برم خرج عروسی که تو قد و قباره این قاشر یا باشه کمر شکنه کش. کمره تو میشکونه او مگه نمیدونه چی شده خاله داره اون وامو برام جور میکنه او او او خاله داره اون وامو برام جور میکنه همین چهار وام ازدواج قزمی تو <تصفيق> مردستا بی من میدونم کچن وارد آریه یه بوزش رو میدی مردم که نمیدونن حالا جلو بقیه اینو نگی بذاره من این وامو بگیرم بقیهش جور میشه بازم میگه بازم میگه با همین چار دو بام ازدواج بردیا رمزانی رئیس شعبه اصابانی استاده جلوی کار خانم محمدی. علم بله میدونم وام ازدواجه آقای رانزانی من به شما گفتم اگر میشه لطفا اون اقنامه رو مه ما کنید که این سمایی که من رئیس این شبه شدم شما باید متوجه شورای من شده باشید روابط نباید مانع ذوابت بشه خانم این دو تا قاطی شدنی نیست شدنی نیست بعد میره سمت باجای خانم مختار یعنی چی که شدنی نیست خانم ببین این جوان پایه یکو یه موقعی رو سنگ آب ها آفی جان درد آپ میشد اگر خودش خود میشد دقیقاً همون مفیدی آقای رمیزانی ایشون کارت ملی ندارن میخوان که کارشونو من انجام بشه آید جلوی اینجا پاوربرین نیست که گواهی نامه ی پای یک بروش کشیدید صداتونو بیارید با این باشه شما خودتون نگه دارید بردیو کارت رو تو هوا تکون میدی و کم میکوبه رو پیشخونه باچه شهرام لای دره پراید مشکی پیمان ایستاده و با موبایلش صحبت خاله من صدا رو برای شما بولند نمیکنم. کنم من حساباتش اون مرتی که خوری که مهر لعنتی رو زد و اقنامه حالا چه خاکی به سرم بریزم خاله بیچاره شدم میفهمی؟ بیچاره شدم چه فکری آخه ویلمون کن خاله من به کینیا قردادم یه عروسی براش بگیرم پیمان هم دوتا آب میده میخره و بر میگرده سمت ماشین خاله بیچارهش میکنم یک آشی براش بکرزم یه وجب رو بهش حالا ببین خدافز چیه میخوای دیگه بار بذارم؟ دیگ چیه؟ مگه نمیخوای آش بار بذاریم ما از عصب افتادیم از عصب که نیفتادیم یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ همین جوابی که دادم بردی خانم محمدی رخ به رخ هم پشت میز نشستن فکر میکنم جوابی که دادم خیلی واضح بود میخوام بدونم مهر شدن اقنامه خواهر زادتون رفتی به این جواب منفی داره یا نه آقای رمضانی، من اونقدر بچه نیستم که مسائل کاری باعث بشه که روابط شخصی و عاطفیمون نادیده بگیرم این دوتا با هم نمیخونه شدنی نیست ارباب بوجو کاردشو محکم رو میز رئیس شعبه میکوبه و افکار برگیر بهم شدنی حالا؟ بله میگم حالا شدنیه؟ خنک شدی؟ رفتم تو کرج وردم دو تا گلچماق کنار ماشینی کمی دورتر از پیمان و شهرام ایستادهن. خب دوباره برش گردون کرج. تو چرا زرد کردی؟ بابا اصلا به تو چه؟ تو ناز سر پیازی نه ده پیاز. ببینم شما کجا این پیازی؟ ها ببین اگه من اینطوری ورقم برنامه و به خاک سیانه میشستم الان لازم نبود تو آویزون این وام مزه باج بوشی. خودم واسه گاروسی میگرفتم. مم. حالا درسته دست والم خالی دلم خیلی پره از کی؟ از این یارو که دل تو رو شکسته دیگه به جون تو اگه بذارم آب خوش گلوش بره پایین سلامتی ما گندولات محلیم و تو هم بچه محلمون تو رو سپردن دست ما یعنی؟ بابا نه ترس نمیذارم آب تو دلت کن بخوره پس یعنی همه اینا به خاطر منه پس یعنی منم یه جای این پیازم باقالی؟ ا پیاز باغالیش فرق نمیکنه که با تو نبودم باغالی اومد بعدی از بانک خارج میشه و سوار یه موتور از بانک دور میشه پیمان هم به دو تا گندلات دیگه اشاره میکنه و اونها با سانتافه سفیدشون میرن دنبال بردی ها رمزانی روشن برکویه تور یا رمزانی همچنان سعی میکنه موتور رو روشن کنه گ این اثار موتور میکنه و موتور نقش زمین موتور داریم به این اون قالب میکنه <تصفح> یه <بابای> دونه <مرتبه> با <بازداره>. های ما <تصفح> چرا های راههنما و بدم شکسته موتور رو عینه که خونی بردیا، پ زمین شده و بردیا دستاش میند برادر مستربو با دلحوره میدوه روی سگوی خونی. خودام مرگم بدی چی بودی؟ چی با ابو قرازه بود؟ آخه چقدر بگم این ابو قرازه رو بندازین بره شما دو تو برادر چی بلایی میخواین سر من بیاریم چرا اندفعه اندافه تو سر من ما گفتیم موتور دور یاد داشت یاد بگیر. تو که از اون چیزی یاد نمیگیری کاش لااغل به اون عشق موتور سواری یاد نمی دادی. اون مثلا به خاطر پشت موتور مادر من. اون حسابگره کدوم رئیس بانکو دیدی پشت موتور بشینه بره سر کارو بیار اون حساب وقت و پول و بنزین و اینجور چیزاشو داره میگم کاشی رحمی به حال این مادر بدبخت و پیلتون میکردی دست از این ابو غرازه این مطرا می میداشتی کاش شما هم دست از سر کسل ما بر میداشتین انقدر به خاطر ازدواج نالو و نفرین نمیکردیم مالو به خاطر نالو و نفرین شماست که الان موتور من زنگیر شده دیگه. فرانس آردم خوب نیست. بله الان به جایی موتوره من یا تو اتاق عمل بودم یا تو آمبولام سینه یعنی آمبولانس کنار بردیا که صورتش خونیه مشغول معاینه است. آره شده از دعوا هست داره خون میاد. نه با این فکش شکسته زبانش پاره شده لای دندونش گیر کرده میاد. مادر با یه سینی چای میاد کنار پوریا و موتور قورازش که دیگه هیچ کدوم از چرخاش نمیشه. داره گنه‌ت گاز بگیر اینا نفوذ بد نزن. بابا این یه مسخال زبون هر جور به چرخی میچرخه. داشتم از تنش آروم زیر می‌شدم ها. چای هم برای دو برادرم بخور. مو اینا هم دیگه نمیچرخه. خب پسر من چون به فال نگاه در نکدی یه سره داری نفوذ بد می‌زنی شوهوها. مادر خودش مشغول چای خوردن میشه. نه بابا چرخ عقب این لگنه دارم میگم. بابا اونم گفتم نفوذ بد نزن. اونم به خود اگه نفوذ خوب بزنی میچرخه. مامان چرخ عقب این لگنه میگم گفت شده. اونم همین طور اونم اگه نفوذ خوب بزنی میچرخه پسر. واقعا ساده ای میده. بچه. بچه. تا بچه. بچه. بچه. مادر میره داخل خونه تا جواب تلفنو بده و پوریا با تعجب میبینه که چرخ موتورش میچرخه. از داخل خونه صدای جیغ مادر بلند میشه. پوریا مادر پشت در اتاق عمل منتظرن پوریا نشسته اما مادر دائم در حال قدم زدن. مادر من، یه لحظه بشین بابا آروم باش چیزی نشده که. کجا بشینم تعالی. بچه هم نکه پارشن رو ساید تو اتاق عمل من بشینم ببین همش تأثیر توه من چرا ربطی بره به تو چه ربطی داره آخه تو کدوم رئیس با اون که دیدی که با موتور بره سر کار ببین از بس عکس واردی از بس نشسته تبلیغات که موتور کردی از بس جلوش ویراج رفتی بچه هم این داختی تو اتاق عمل <تصفح> ما گی رو سر چقدر که مندرره من اگر مثلا به جای تعمیر موتور موقع ماشین کامیون سنگین تعمیر میکردم داشتم با کامیون سر کار نه بس که سقدت سیاس نپوس بد زدی از صبح که شدی گفتی بیمارستان آن مریضی مردن تصاد بابا سقدت سیاس بچه من زمین گیر شد اینجا افتاد داداش زمین گیر شد حیمون شهرام نشستم توی قفه خونه ای که نه ولی یه چند سبایی روی زمین بشه تا بفهمه معنی زمین سفدیانه چی <تصفيق> ای با ما نخم پیمان تو میخندی من استرس هم بیشتر میشه رنگ و روش رو ببین چرا باتی کردی تو که نسته با صرفی پیاز نیازه نکشی وسطا پیاز کدومه قربونت برم آقا جون مگه تو پشت رول نشسته بودی تو اصلا این وسط چی کاره ای اگه مرد باشه چی که دوستاتو گرفته باشن زیر اخیه به حرف در بیان چی؟ او دست فلکم به اونا نمیرسه مگه این؟ مگه این که تو با این ترست کار دستم بدی. بابا من میترسم من میترسم پیمان عجب قلطی کردم به تو گفتم یارو چه قلطی کرده؟ نه ترس بزر ما رو باش که تو رو تو چی نقشه هایی کشیده بودی؟ چنر چنر؟ خودمون گفته بودیم این که بچی روحن ماست زیر پروال خود تیپ داره سرزبون داره قد و بالا داره توی این ملحش رو داره واسه خودش ویترین داره دو روزه دستشو بگیریم بکشیمش بالا کدوم بالا؟ بالای دار؟ <تصفيق> ندیمونه تجارت مانی بسینامو هم چی داشت؟ چی داشتی؟ یه قلیون رو تو چه ده تولایش مشتری قهر حسابشو پرداخت میکنم و میره خدا با دورید من میبینی؟ با همین یک قروندوزان خدا رو شو. تو این سه ساله با شریکم حسابامو صاف کردم هیچ یه چندره غازم گذاشتم روهم که از زمین بلند شد نکنه میخوای دوباره بزنی تو قاچاق در ترکیه؟ درست صحبت کن قاچاق چیه؟ تجارت بیزینس. اون وقت تو این تجارت من باقالی کجا این پیازم؟ تا <تخیاری> یه غور قربونه دارم <تخی> بابا تو فیترینی منم داخلشم یه دو روز مثل آدم کارکنی و از روز <زمین> بلند میشه بالاخره دکتر از اتاق عمل بیرون اومد <متحن> نمیشه بلندش کرد چرا مگه چی شده سان جای بدن شاسی جدید دیده مثلا کجا انگیشون شکسته زانو شمش جراحی شده یه دست شمش شکسته ولی خود دکتر یه گوش تو هرجور زدیم به چرخونه میچرخ باید مادر ما دردی دیگه سوال جوی نگارم نیست مادرم چشمات کور. چرا بعدی؟ اخر کو همینم که داره به شما چشمات می‌زنه. خب من چرا؟ می‌تونم ببینم باشه. من الان با 1 ساعت دیگه میاد داخل بخشو میتونه ببینه داش. کیو پیمان و شهرام هم چنان توی قهوخونه پیمان گپ میزنن و نقشه می‌کشن. حالتو. تو. به اون چی کار داری؟ تو چرا میشی. می‌شی؟ خب نباید شک کنه. به چی شک مگه من کاری کردم. کی گفته تو کاری کردی؟ گفتم تو با می‌شی میری بانک خیلی شیک. میگی خاله جون این وام منو بدین. کدوم وام؟ <تصفيق> خدا، عمر رو برق میگیره، ما رو چوب کبریت خاموش شده. بابا تو باید بری بانک، جوری خالت طبیعی رول بازی کنی که شک نکنه. کی بود میگفتش که من یارو رو ال میکنم، بل میکنم، جیم بل میکنم، ها؟ من بدبخ. خب افتاد. حلی. حلی. حل. حل. حل. چای تو بخور دست به فنجون میشن اما هر چند لحظه یه نگاه مشکوک نساله هم میکنن شب شده و شهر به خاموشی رفته بردی روی تخت بیمارستان خوابیده و پوریا دست بردی رو گرفته و دلداریش میده تمام سر و صورت بردیا ها باند پیشی شده ما هر جزش خدا جوابش بده نشدم چیکار می منم دو صد درام بابا چی چه بابا چی دیگه چه زوره هم داره چی بابا دو کلمه حرف احساسی زدی محکم دست من گرفته چسبیده با تو نیستم با بردیوم چی شد مادر جون قربونت برم بردیو دستشو به علامت گوشی می‌ذاره میگیره کنار گوشش خب مگه میتونی حرف بزنی گوشی می‌خواد چیکار بابا خب موبایلشو بهش بده آخه می‌خوای مار بازی کنی آه، آه. بیا بردیو بازم با اشاره سعی می‌کنه خواستهشو به پوریا مادرش بگه چی چیکار کنم موبایل خودش رو خیلی خب زودتر بگو پوریا از روی چوب رختی کنار تخت کیف بردی رو بر میداره و دوباره کنار بردی ها میشه بیا همه بوشاد اینجاست او او او اینکتن بعد ببرم بشورم خونی شده پوریا اینک که ها رو میذاره تو جیبش پوریا مداره که داخل کیف رو بیرون میشه و نشونه بردی میده آره چک کردم که همش اینجاست اتفا کنم را برم آها, آها برم بانک خب اینا رو بدم اونجا گرفتم میرم بانک میگم داداشم فککش اومده پای سی میگم که آه... داداشم آه... آه... رفته ماموریت خارج خوبه یه مدت نمیاد نگران نباشیم خوبه حله اینا رو بدم بهشون فقط یه چیزیه من اجسه بوین جیدت اصلا بلد نیستم چجوری جوری می میخوای الان به من بگی من آدرسو بهت میدم خواهشن با یه سرویس تنشه برو بون این آبرو داره برو بیا داره اونجا مادر من ما تا تو قیافمون یه جوره یه شکله افسانیم با قیافه من آبرو رزق قیافه مننده اولا که لباستو میگم تو من سلامتی اونجا این رئیسه خیلی خوب میرم خونه یکی دو تا از خوشو که آبروی آقا نره. اولین ساعات روز و پوریا راهیه بانک محل کار بردیا شده. مستخدم بانک در حال تیکشینه. سلام آقا سلام. چرا مطور. مطور تو تو اه جثارتن دیگه کردید؟ اون از موتور. موتور کجاست؟ تو باغچه. تو پارکینگه دیگه. آریس اصلاً نیاین نگران نباشی شما. تا شما برید پشت میزتون بشینید من یه چایی دیپش براتون بیارم با اجازتون آیره پولیا <تصفيق> پوریا ریگی به کفش داره و اونو در میاره تا راحتتر به کارش برسه چقدر پوریا و بردیش شبیه همه چقدر خیره ربندایی بانک خودشونو جمع و جور میکنن نو به خیال اینکه رئیس اومده زیر چشمی پوریا رو میپا پوریا هم گشتی توی بانک میزنه آقا جسارت میجن شده تشریف نبردید پشت میزتون بشینید خب بله دلیلش تو چایو بذار پشت میز خود من می میشینم آب آبدارچی سینی چای رو میذاره روی میز رئیس شبه بوریا هم میز مورد نظر خودش رو پیدا میکنه نیر پشت میز یا یعنی جای رئیس شبه بانک میشین آقا خدمت شما بفرماید خدمت شما خدمت نرشه بفرماید بست درد نکنه داداش ها قفوراقا رسی قفوراقا چه خبر؟ از کجا نه منظرم این که حالت چطوره ممنون شوشت میکدر اونم دیگی به لطف شما آقا مدرهت مخوام اینکتون کجاست اینک اهان خونه جا بزشتم اشکالی نداری من برم بیارم نکارتا امنی ندارید آقا شاکری شای کنام قلبی سلام. محمدی با یه برگه میاد به سمت پوریا که حالا نشسته پشت میز ریاست. پوریا کمی جا میخور و میگه صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. نامه اداره بازرسیه. امروز باید تکلیفش روشن بشه. اداره بازرسی؟ بله. پیشو کور شما زاینستانو پیگیری کردن. آه. بازرسی خودتون هرجور دوست داشتین بازرسیش کنیم من بله مثل همیشه خودتون یه جوری رفع جوش کنیم هم, هم کاری که همیشه باید بکنیم و بکنیم دیگه چشم به به شما یه چیزی میخواستیم به من بگیم درسته؟ نه خواهش میکنم بفهمه من میخواستم بپرسم چه خبر همین از کجا هم چه خبر شما توی سه که تشریف باوردین تقید یه چلوپنگیقه تخییر داشتیم هوقاتشون چه اتفاقی بیافته آه یه چلپه دقیقه فقط بله نه نخیر نه و شما چی میخواستین به من بگیم آ میخواستم بگم بابت برخورده دیروزم ازتون معذرت میخوام لحنم بد بود و اصابم مسلط نبودم دیروز آه فهمیدم قطع دی بله متوجی شدم که مقداری اصلابتون سرجاش نیست جوابم همون بود بابت لحن معذرت خواهی کردم متوجه شدم واجزتون خانم محمده به میز کار خودش برمیگرده پول یه نگاهی به دفتر دستک و کشو های کار برگام مینداسه؟ داداش حیف کردم دست و بالم بسته وگر نه همچیم با پشت دست میزدم تو دهنش که بفهم با داداشو من خوش صحبت کنه راستی چه جوابی داداشو من داده اصلا راجع به چی بوده؟ اصلا چی کاره هست؟ بچم قلطی کردی میشد این چیزی پیدا نمیکنه. کیف بردی رو بر, بر میداره و پوشه رو از توش میاره بیرم سکیلیدارو کجا بذاشته آخ راستی این پوشه رکو اینو چی کارش کنم بداشت گفت به کی باید بدمش آه. اصلا اینجا کی به کیه اه احتره برم یه سر یا دستاشو پشت کمرش میذاره و گشتی تو بانک میزنه کارمند ها هر کدوم احترامشو به جا میارن و مشغول کارن باید کارا سلام چجوری دیگه؟ شکرم بلاخره به محل کار شیرین مفیدی میرسه خانم مفیدی یه که میخورو از جاش بلند میشه بفرمایین شما هم بفرمایید؟ چیو؟ شیرین مفیدی از شیرینی هایی که تیز رفتاره تعرف میکنه به پوریا دستبخت مادرتونه ها؟ مادرم فوت کرده او خوشمزه است؟ درست ده شما دردن کنه خدا رو هم کنه. خدا رفتگان همه تو به بیاموزه پوریا یکی شیرنی بر میدار و ظرف شیرنی رو میذاره رو یه پیشخون مشتری بانک یکی از شیرنی ها رو بر میداره مشتری های دیگه یکی یکی از شیرنی ها میخواهن و ظرف خالی خالی میشه اما پوریا و مفیدی حواسشون به این چیزها نیست و حسابی بحثشون گل انداخته پوریو دستی به ظرف شیرینی میبره و با تعجب متوجه میشه که خالی شده. تموم شد. قبول با آقا. این کارا رو من زحمت راه بنزی قبول حق باشه. اگه خوشت اومد من میتونم واسه شما بپزم. گل از گل پوریا میش گفه. حتما این کارو بکنید. بیکارتون برسی. به کدوم کارم برسم پیمان؟ پیمان و شهرام از قهوخونه سنتی میام پیرو. پیمان ماشینش رو روشن میکنه. خب میگم دیشب از تو کابوس می دیدم بیا بالا کارتر کجا میخوام برسونم بانک خودمم خبر مرگم بدم لباس اون کار دارم باگه ببرم دم بانک ببینم هش به طرفو زدن چه غلطی بکنم خب تو هم واسه شیه فاتحه بخون این دنیا içim seni içim تون غوری یا شاکی و عصبانی خیره شده به پیشغون مفیدی مرد میانسالی پشت پیشغون ایستاده و مشغول گپ زدن و خندیدن باششیینه پس باش صحبت نکردی چند داشت نشون نمیده کهدل که ما خوشک که خواهمون کارمده بانک که ما می بینیم به وام گردن کلوش روش بکن داداش خود می بشم توی شوی فزتی که میتونونه باام گردن کلف بده اگه رئیس شوبه به خود میتونه به نخواهد من من می ترسم آخر بخاطر این کاری تو این بودجه که من تو همون محل صرف کاری که هست ازش برمونه. پس من خودم بدم با بازی صورت. من نمی خوام. چون کار نکن. من نمی شوم. مزملین رو بیدار می کنم. حالا کسی از پیمان تی داده؟ سری کی سری کی جواب میده؟ آن بار سری. چون نخواهم بود. من باید اینجا دوشکل و صورت خودم. تا می شوم. همین جواب چشش آقا. ایزد بودید پنج شنبه میشماری؟ مگه تو توام؟ بله بیع آقا، امروزی از ده تا دیم کنداریم. ایزد بودید پنج شنبه میشماری؟ پنج شنبه دیم میشی دیگه میشماری؟ اونجای شنبه دیگه میشماری؟ خیلی خوب است برو بیشی. به برو دیگه خدا آمده است خیلی ممنونم نبب سپاس کن یک دو سه چهار یه برو دیگه چهارانی بوریا آماده میشه تو از جاش بلند که. به الاخره دوزش شیرین میره جون تو برداشت دویجه هستی بوریا عصبانی شیرین رو صدا میکنه من؟ من بله خانم به قدری ازتون عصبانی هم که الان فاملیتون یادم رفت مفیدی هستم خیلی خوب خانم مفیدی اسم چی بود؟ شیرین شیرین خانم, خانم شیرین مفیدی واقعا من روی کارمندانم غیرت دارم من نمیفهمم این رفتار چی شما اینجا داشین چی؟ ببخشید به داداش من اومده بودش تبریک کار با هم صحبت داداشتون بود اه. بله یعنی شما خواهرشی؟ بله اه. خب من منظورم همینه خیلی بده خیلی زشت زشتسازنده است که داداشت بیاد اینجا یه دعوتش نکنی. بیاد اینجا با من یه نسکافه یا چیزی چیز بره چای؟ یعنی شما از این که برادرم ما... بله, بله دیگه دقیقا به خاطر این که خب خیلی زشت و زننده است که ببینید خانواده کارمندای من بیان اینجا بعد ماها بیتوجه مثل رفزنداغ بانک بهشون بیتوجه باشیم برن بیرون غیرت شما گفتید غیرت هم من روی کارمندانم گفتم که حساسم رو خانواده کارمندایم احترام خاصی رو آیدم بعد نگهش میداشتید ببخشید تکرار دیگه نمیشه. دیگه تکرار نشه شهرام از بیرون بانک دید دیدزبن داخل بانکو با موبایل رو صحبت میکنه. <تصفيق> الهی قربونش برم تو که سالمی خودتی دیگه آره خودشه خودشه سالمه سالمه آقا سالمه آره عزیزم هم مگه نمیبینیس چه رو برو گرده پشت بیزش نشسته آقا بانک بانکو چه میدونم آقا الو سلام مخلصم یه خبر خوب دارم برا طرف سالمه رئیس بانکو میگم دیگه آره بابا به جون شهران منو جلو چشای منه ای بابا جلو بانکم دیگه پیمان کنم دوستا به یکی دیگه زدن نداشت به جون دوتایی راست میگم آه. اصلا که باور نداری بیا ببین مسخره بازی نیست ماسخره‌بازی خانوم، ماسخره‌بازیه. ولم کن. آقای محترم، ارائه کارت چه قانونی بانک یعنی که چی؟ من نمی‌خوام اینجوری انچافیدم براتون. آره من چند زبیده کارت درایزن. باز هم ارباب رجوع بیکارت شناسایی بانک ناراضی. آقا جون من. شما مردی، هر مردی بهتر می‌فهمید خداییش. آقا جون من، من این کارت شناساییمو چی؟ گم کردم. آقای رئیس، این کارت ملی ندارم. خب نダشته باشه، شناسامه داری؟ راستمندم اردوشون هست نه آره اما به قرصشون هست همه چی یک کامیون هم دارم یاد دارم خودیش پول یکی عجیبی نمیخوره با ما بابا خان خانم کار راه بنداز با پای یکم کسی کسر سینو چی من دارم میگم دیگه یعنی چکیشو نقد بشه رئیس آره اینو بابا اینو شهر شکرت براق میکنه این حالا ایشونام میخاد کارو راه بندازه رئیس میگه من میخوام خودمو رئیس بگه پول بده پولو ما بده بریم پای خیر ببینی از امروز روی دنده چپ بس وا من چی شد شما فرمودی که زوام می من زوامن از کجا بیارم وا چی بوده گالی وام من ایشونام بدین پداختم با خانم محمدیه خانم محمدی وا من ایشونام بدین دیگه همسن مادرمه احترامش واجبه ولی باید تمیل اعتبار بشه قربان اعتبار کدومه؟ سن مادر ام سن مادر خودمه دامت صاحبش، با که شیر تو شیراب، خدایش دست چکمو وا بدی، پنجا برگی. یه دست چکم بدید ایشون. باشه، چش. یه نفش برگم کارتو راه میندازات که نوکرتم. دم دمت گیا۔ اینم عالی بودی تو. نوکرمونم، میگوش که نداره یکم اینور بکم. خانم کارش راه بنداز نوکرم. خداییش برجون رامل خانم کار داریم. چه باحال این رییسه. اما تاپ داره یه روز یه جوریه، یه جوری دیگه است. کارش که ولی انجام میدن. محمدی با دلخوری میره سراغ پوریا. علی این کارو به تلافی جواب منفی منه. بدون کارا. نقض قانونا دست و دلبازیای که میکنین؟ من دقیقه متوجه نمیشم چی دارید میکین. فقط خواهرزاده بیچاره نمادین وسط له شد اعتبار این پیرزن اعتباره اما اعتباره من که میشه خواهرزادهم لگد داده شده اعتبار نیست. شورتونو زیر پا گذاشتین. حقیقتش ببینید خاله محمدی من سوشی پورگاه زنگ میخوره و خانمه محمدی هم با دلخوری محل کار رئیس رو ترک میکنه <صفح> <تصفح> الو چی میگی مادر من دادا چطوره من سر کار یعنی چند تا کار دارم که باید انجام بده بگو خیلی خیلی خیلی خیلی دوباره آبدارچی مثل عجل معلق ظاهر میشه آقا چه چه چایی نه نه بوش کن آقا فر بله من دارم میرم جایی بانکو سپردم به حواست باش برم آقا این وزاره مخوای بیش دست من؟ نه پم. من حواسم به بانکو من دارم میرم جایی کار دارم دیگه سپردم همه چی دست رو چشتر حواست باش آقا چی ولو میشه روی سندلی ریاست رو دستاش رو گره میکنه با غرور روی شکمش بش پوردو هم بانک رو تحرک میکنه. خانم محمدی میاد کنار میز رئیس که حالا جعفر که آبدارچیه پشتش نشسته. باش جعفر. بله خانم. آقای رانزانی نگفت کجا میره؟ حالا یه کاری داشتم فیلتر دومو انجام بده. شما هم یه کاری دارید به من بگید. باشه. پش باشه بر برمرم چای به سر میزم. حضرت شماور خراب یک تدی لحاظش کنم. شما بفهمید سر کارتون. من نمیدونم اونجا چه خبره. خبر. حسابی مشغول کیف کردن با صندلی ریاسته. های موثبه درست کارم تنظام بری درسته چش ندارم ولی خب دوتا گوشت دارم محواست دیم کنم به کارتون برسی پیمان شهرام رسیدن پشت در بانک و مشغول دید زدن داخل بانک هست اونهاش؟ هاش رو سندلی نشسته اون که پشتش به ماست نمیبینی داره تکون میخوره؟ شاید یکی دیگه پشتش نشسته نیگاه آخه کی میتونه روزندر صندلی رئیس بشینه ما او تو ما رو گرفتی؟ این دیگه کی بود؟ آخه چش قشنگ من به خودم اعتماد نداشته باشم ولی به بچه ها اعتماد دارم وقتی میگن زدن یعنی زدن حضر مگه خود یه لحظه ندیدی زدم بهش ندیدی؟ به جون خودم با همین تو چشام دیدم خیلی خوب دیگه الان این یارو سالم خیال تو هم راحت شو. بوریا مادر کنار تخت بردیا نشسته. من تا این با پای خودش از در بیمارستان بیرون نره خاطرم جمع نمیشه. مادر من شما ای برو خونه اسرتو کن من بالا سرش رئیس آدم اصلا حرفش هم نزن. میگم پس چی شد این کارمندا چه نمیدن ملاقاتش؟ اونا رو من گفتم نیا. چرا؟ نه، حقیقتش داداش دوست نداره اونو بیا تو این شرد ببیننش البته شاید فردا بیان. مم. بردیا با اشاره حرفاشو میزنه مم. خیلی خب بابا آدرس نزدم بهشو آدرس؟ خب به گوشیش زنی میزنن اوه نه گوشی شارج نداره اه خب برم برش شارج میکنه تو کیفه شده برگه سراغ لباس ها و کیف بردیا ها میره و موبایلشو بر میداره مشت میز ریاست این دست اون دست می تا به شیرین که کنار میزش ساده و با پرونده ها ور می یه چیزی بگی شیرین بله ش... ش... شیرینی من دوست دارم من خیلی دوست عاشق شیرینیم می شد یه شیرینی از ظرف ورد شیرین هم به میز کار خودش می ده. خانم محمدی نگاهی پرسشگر به پولیا میندازه و سریتکون میده آقای مادر کجایی ببینیم پسریت آشک شد, شد. خانم محمدی باز هم از نگاه دلخور خودش دست نمیکش و حتی دست به گوشی تلفن میبره آقای رمیزانی رمیزانی متوجه زنگ تلفن نیست و خانم محمدی به گوشی روی میز اشاره میکنه بله بالاخره پوریا گوشی رو بر میدازه. شمایی؟ بله دیگه صدقی شما هست من میتونم چه چی میگن؟ نمیتونم با خودتون کار دارم نه نه بگونیش نستی؟ ببین جلسه داره یه چیز خودت بگو من با این بازرسه ها زیاد حال نمکنم آقای مسعودی ها دوستتون دیروزم که رفتین زنگ زدن بگه از دیروز سوالان موبیلتون خواب خاموشه مسعودی دوست منه آها مسودی خودمون میگی به شکل خودم بهشتری میزنم محمدی گوشتلو میذاره سرزوشو و پوریا دست به موبایل میشه البته موبایل بردیا به زیر میز میره خانم محمدی دعایم سرک میکشه تو از کارهای پوریا سر در بیاره ایوان خودشه نیخ بهش خب ببینیم داداش شماره کدوم کارمنداشه کارمانداشو داره مظلوم موربی فامیلیه یا موربی چیزی نه فامیلی محمد باغر آبادی م... محمد باغر آبادی و دیگه او. خانی موفیدی صف و ای روی میز کوبیده میشه و سهر دمیزانیم میخوره به میز و از زیر میز بیرون میاد لطفا دسترشون رو فامین تا فکس کنیم منطقه شما مثلا اون بدبختم همینجوری داد میزدی یعنی نه نه هیچی اینا رو بعد چیکار کنم فقط چون می‌خايم فاکس کنه ایملوتام رو رواننویس خودتون لحاظ کنیم تا اتفاق یک ماه پیش نیفته آم بله بله بله بعد خانم محمدی اون اتفاق یک ماه پیش اومد چقدر دلخراش بود اگه اون یک ماه پیشی رو بیارین من لازم دارم اونارو که بله شما چیکار من لازم دارم کار دارم دادش من چشی کش از رس اینو برلو این چه شغلیه دادش من باید این رقمو چیکار کنم باید از رقمو چیگار کنم پوریا گیج و سردرگم به برگه ها نگاهی مندازه و محمدی با یک برگه که مربوط به ماه قبل برمید بله از خیلی ممنون خیلی خوریا متوجه نگاه مشکوک که خانم محمدی میشه خب داداش دو چی نویشته مورد تقیید است لخست کنی یعنی فقط بنیمزم مورد زهید از پردی ل... ای بابا یعنی که ما منگولی هم میتونه انجام بده داداش اینم شغل ده شک میکنیم خانم محمدی بله خانم محمدی یه لذت تشیف بله میخواستم بگم که در رابطه با وام خوار زدتون هر کاری که صلاح بگین من انجام بدم شما که دیگه اقنامه رو مور کردینم مشکلی نیست راهای دیگه بالاخره وجود داره که به چه جوری حمایتش کرده یعنی یه وام یه عنوان دیگه آم بله مثلا یکی شمین چون کار خیره دیگه ولی آقه خیلی عجوله میخواد هر چیز زودتر باشه خوب ما کاش با انجام هم گل از گل محمدی شکفته <تصفيق> بفرم شیر میده <تصفيق> بمنه هم صرف شیرنی رو به محمدی تعارف می کنیم. این یکی رو بایی شیرنی رو یه امضا شرشه کم کردم حالا میمونه مشکل خودم با این خانم مفیدی و... یه یه مفیدی ظاهر می شود پرگه یکه می شما بگو من چی کار کنم تو خوب نیست من نه خوبم آقای اصرا داره قبضه و برقه شما بدیم آیا بودان پرویه یعنی ما از جیب خودمون قبضه و برقه اونو پرداخت کنیم نه ولی خودتون گفتید با خود پرداخت پرداخت کنید آها من گفتم خود پرداز. بله خب الان هم میگم خود پرداز، خودت پرداخت یعنی خودتون به پردازیم من پولیشو که میده دیگه آره بله بری بری پرداخت کنیم جشمه. شهران بیرون بانک باز هم مشغول وارسی داخل بانکه یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه به چشمه نمیشه اعتماد کرد دبا کنه همون کچه کن دل هم میدن این دوتون نمیفهم دل قلوه رو؟ نه بابا این یارو رو میدن یه جای کار میرنگه یه بابا خالانه الو جونم خاله فکر کنم ما رو همین نزیکی هم مجدگونی بسی؟ جدی؟ بگو جون شهرام اومدم خاله اومدم های میلونوام جور شد چون در نمیاد طبیه بگم انا خالم دوه این جور در نمیاد یارو رو میگم این چش جور کی؟ خرکانه ما رو دوشناخته با بابا نرم نمیخواد به خردو هایی کنم مگه خردو تو این کرده؟ با با از بانک میاد بیرون و شهرام و پیمان خودشونو از دیرش تنفونید کجا؟ بابا هیچی نه خوب بیا اونگر من دارم چه خالم با بگیرم با بگیرم با با با با خاله بازی تو بذار جنار یه بهت میزنم که وقتی بیداد کنن نه من زیر قطار رفتی یا من زدم ات. بریم دیگه باشه ما پیمان پوریا رو که توی تاکسیه تقیب میکنه بعدی نداره درامه میگی بعد بعد بعدشی که من دیدم یارو این ماسک کف خیابون پن شد یعنی اون افتادنی که کرد حد عقلندش باید یه ما بره لالا نه اینکه بره در گوش کارمندش لالایی بخونه خب خب که خب یعنی اینکه یه جای کار میلنگه یه کاسه زیر نیم کاسه است آوازه باش آوازه من بابا تو شما ما پروانه عمت شما نبینه ما رو آمان ما ب... رو ببینه حالی ای پوریا میده داخل اورژانس. شهر و پیمان هم دارن توی بیمارستان میشرخن حالیش نیست ایدی گفتن بگمت که هم تو دیگه که هستید چه حرفیه میزنی خوب منم بردرشم ای؟ اگه برداشت بودی از صبح تالا کجا بودی پس؟ مامان، دنباله کارای داداش بودم به جور شما خودم کارای داداشت خودم. خودم. بیمی و نیرو انتظامی و اینجور چیزا دیگه تا زنگم زدین که اومدم دیگه بازه دکتورشم که فعالش خوبه دارم میرنش تو برد ای بابا اینقدر بخش بخش نکن ما به همه ی سر زدی. سرزدیم یه چیز نمیفهمم ما نه دوباری رئیس خانکو میگردیم دیگه پر نه تن. از طرف وضاحت بهداشت نومدیم به بیمارستان سرکشی گاییم خب چرا مسخره میکنی؟ من میگم فرض خانی رو پیدا کردیم بعد باز میگه بعد باز میگه بعد بعد میام زود بر میگردم آمان پوریا زود بیایی ها اگه حالش من بکر من دستی تنهام چشم برانکارد بردی ها به همراه مادر و چند چندهایی پرستار از کنار پیمان و شهران میگذر و حسابی اونها رو گیج چشم چشمم کور که اختیاران رو دادن دست تو بولا جان چرا نمیپرمی؟ این بابا چرا باید بیاد دیمان سال اصلا چرا باید ظالم باشه؟ این خود رو که ها کشم هی وای این خودش بود؟ آره کسه بودی این کسه؟ آفری به من؟ یا به کاسه؟ ربینیم کاسه؟ این یا روح یا داداش دوغلوشه یا روحه به رو اعتقاد داری؟ که به روح و اعتقاد ندارم هستمون هستم. خودش؟ پس بریم کجا؟ مطمئن بشیم چطوری الان؟ خالت. خالت خالت باید بدونه آه پیمان آخرین نصیت ها رو هم از لایه در ماشینش به شهران شهران ببین اون چیزایی که یادت دادم فقط از خالت میپرسی یه وقت سوکی یه چیز اضافه بپرسی گندش در بیاد پنی نقه بعدم خودم بهت زنگ میزنم که به این بهونه بیای بیرون باشه بابا باشه شهران به نزدیکی در بانک میره اما از تحجاب چیزی که می بینه به پیشونه میکوبه و بر می پیش پیما. باز هم پوریا و شیرین خلوت کرد چی دارم کم کم به روح اعتقاد میده چرا؟ حرف تو که. ظالم؟ از تو سالم کرد این دوتا دوگلو یکیشون تو بیمارستانه یکیشونم هم پشت اومده اینجا چرا آه؟ چرا چرا ببینم خالت گفتیش که تازه ریز شده آها یا این که این پاشده جای اون اومده بانک قیبتش رو موجر کنه یا این که اینم اومده اینجا که یه کارایی بکنه چه کارایی چه کارایی که زنگ دادید گفتید باز رسا اومدن دیگه وزیفه هم بود نه خیر اتفاقام برد من نه تنه نبود بلکه میشه گفت که یه جورایی منی خاصی هم برای من داشت منی؟ چه معنی داشت؟ من, من, من گفتم منی؟ بله نه نه من مخصوصاً معنوی تو معنویت نه نه از لازم معنوی خیلی ارزشمند بود اینکه کار رو رله کردید. باعث شد که من در تکابو بیفتم یه چیزی جبران کنم. <مخال> من کار زیادی نکردم. مسئولیتی نداشتم. خانم محمدی این رو انجام دادن. دست سرداتون درد نکنه. شما تون خانم محمدی کدوم بود؟ خانم محمدی هم حرص میخوره و اونها رو زیر نظر می‌گیره. خب خانم محمدی چی خانم محمدی خودمونو دیگه. اونا که نمی‌شناسن بله بله بله شما مجردی دیگه بله شما تو سه ماه پیش آقای امضا فرمه من کردید. نه نه آره اونو که خودم امضا کرد فقط نه از این جهت میپرسم که شاید گفتم تو این سه ماه تجدید فراش یه ماه ازواج کرده باشید نخی از خدا رو شیردی بفرمی با جزت. شیرین بدون اینکه شیرینی برداره میره سر کارش رمزانی متوجه محمدی میشه و با ظرف شیرینی میره سمتون ممنون خواستم ازتون تشکر کرده باشم بابا تو همین که در نبوده من نزاشتیم بانگزای بازی چیز یعنی آبرومون بره چهران وارد بانک و وارد جمع میشه خواهش میکنم انجام وزیفه بود خاله از خواهرزادتون چه خبر اون وام خواهرزادتون سلام علیکم چه خبر است اومد ایشونه سلام سلام خاله شهرام خواهرزادهم آقای رمزی ظهری رئیس شعبه سلام پسرشاد ما شما هستی خوشبختم امیدوارم که به پای قانونتون با هم دیگه پیروز زمین گیر شید با وامیزات بازم ممنون با وام شهرام اختیار این وظیفه بود رمزیانی برمی‌گرده سرش خاله بله خاله ها خاله چیه؟ خاله این چجور آدمیه این نه به اون مهر لنتی که زد تو اغنامه نه به این دست و آدم قانون مندیه اما خوشدلم هست اینا چند تو خوهر برای چی؟ این پوریا باس هم از بانک بیرون میزن خستا نباشید خانم موامدی خسته نباشید خیر حفظیادتون. خیلی موفق دمتون گرم. خواهش می خواهش می کنم رد کیو گفته چند تا خواهر همین آقای رئیس. پیمان زمزانی رو زیر نظر میگیره و برای شهرام زنگ میزنه. بله. الو. جونم پیمان. الو. چی شده؟ خلی. چی؟ چی, چی زهرامون؟ بودو بیا. چی میگی؟ بودودی که. هم‌چنان شهرام و پیمان سعی می‌کنن از کارهای رمضانی سر در بیارن. رمضانی هم وارد بیمارستان میشه. یمی‌خوام بهت بگم که این‌جا همه‌ی این‌ها خارتو تو به کار بنداز. این آدم نباید تو رو ببینه هایا برو یه چرخی بزن تو ببینم چی کار میتونم بکنم نه نمید پیمان رو تنها میذاره بگیری یه شکی میره تا سرکی بکشه نگاهی به بیرون میندازه و اون میشینه کنار تخت بردیا <تصفيق> خدا بگم چی کارت کنی داداش خودو دفته در این تختوه ما رو انداختی تو این بازی کاش همان خواب نرودی بلن میشد و سرم دایت میزد و پنگ دیگه روزگتر تو میکبیدی توی سرم مثل میشه توی بازی که یاد داشتی دوالو هر بد اخلاق و گند دماغ باشه بازم داشت سایه رو سرت باشم الان به کمکتی اتیاج دارم پوریا اینه که بردیه رو از چشم بر میداره داشت من من. من مادر همسر نیست شرمن بدن من آشق شدم آشق شدم پس عاشق شدی که این کش تنبون در میری و اصلا پیداد نیست نه نه من. من نه نه نه به چیز چیز کجا بودی مما من رفته بودم چای بخورم تو کجایی از احباد گفتم گوشی قزمی تو عوض کن چرا جواب نمیدی؟ تو الان کجایی؟ ای ای ای من گفتم بری تو خیابو احمق جان میرفتی یه طبقه بالاتر حالا پاشو بیا یه نقشه توپ دارم که الان وقتشه آره بیا کجا بریم ماما یعنی چی کجا بریم من میخوام ببینم این دختری چیه که اینطور دل بچه منو برده اون کسی میسرفی میزنی ها پاشو بریم تو حیات دادشت تا استراحت کنه بس چی بریم تو حیات حالا بس ما دیگه من قضیه اصلا محرم و نیست. مو که قضیه رو هواست. هر وقت جدی شد چه اسمیم خودم بهتون میگم. قدیم ما رسم این بود که پسر عاشق میشد، مادر پدر بیچاره آستین بالا میزدن براش عروسی میگرفتن، عقد میگرفتن، مراسم میگرفتن. حالا وارونه شده. حالا آقا عاشق میشه، خودش میره همه کارا رو میکنه، تاریخ عقد ازدواجش هم میذاره، ننه بابای بذبخ بنن فقط دست بزنن. نه اخو شهرامو پیمان وارد اتاق بخش میشه. سلام. سلام. سلام علیکم خدا بد نده بعد ده واقع دیگه دو قدو بله شما را ایسپان دیگه تا این دپل مسوم که اینجا افتاده رئیس باندی یعنی از اولش معلوم بود عاشق چون به جون شما توی تو این راهرو میرفتیم چه ایشون که به اوشون افتاد چنان چیز سمتش که من گفتم انقری پسر خاله ولی بعدش وقتی دیدم ایشون خیلی سرد با ایشون برخورد کردن تعجب کردم حالا ان که ایشون هرچی زودتر خوب میشن میرن سر زندگیشون حالا چیشون شده تصادف کردم بله از پشت دادن بیچاره رو لطه پار کردن اینجا انداختن. امیدوارم جز جگر بزنم که یه فکری به حال من پیریزان نکردن من چقدر سوابه خیله خوب خیله خوب ببینم اینا بردیارد کجا میشناسون والا ایشون رئیس ما که خالم هستن در واقع ما بهتر مزاحمت های صوتی ایجاد نکنیم خوابشون میاد ما بهتره بریم توی حیات یه قدمی بزنیم اکسیژن به مغزمون برسه بعد که حالشون بهتر شد دوباره میاییم سر میزنیم آره باشه آره باشه کلونی شهرام بره حیث بیمارستان بشه باشه پوریا هم به دنبال پیمان و شهرام میاد از بیمارستان کارش بشه چی باشه باشه میگی تو اصلا فهمیدی من چی گفتم آره عزیزم من فهمیدم شما از اول گفتید فوت کوزه بدم دست شما آه. شما ریشو قچی دستت باشه اما این به شرطی که این یارو الان بیاد پایی این توجه کن من تو اون دخمه قهوخونه روزی 100 تا از این چاکوتونه برا رو جواب گوام تازه قبلش تاجر بودم برای آوردن یک چیز لباس از ترکیه دم هزار کس و نو کسو میدیدم اگه قرار باشه من دست این جوجه ها رو نخونم که باید زغال بشم رونوک نوک قلیون مشتری ها کن نوک قلیون مشتری ها نه خودو طرفدار میام ای فلیس فلیس بیا بیا اینجا چه خبر بگو نمیدونم، مثل اینکه شما دو سا یه جور اشاری من بیام با این یه حرفی بزنید مم... پیشنهاد توپ برادر. دارم های قبول نکنم آه. این رئیس غلابی بودن، تو همچین لو میدم که در سطح جهانی مثل توپ صدا کنه پس من پیشنهاد نیست تحدیده ببین ناداش من نمیدونم توی واسه چی رفتی جای داشت اونجا نش ولی اگر کاری که داری اونجا میکنی مایش بیشتر از پیشنهاد ماست که ما هستیم و الا پیشنهاد من مولاد ازش نمیره که هیچ ایش قطری هم نداره خب خب خب به جمالت تو داری تو اون بانک هم چی کار میکنیم سمه ما چه پای اون گلو هم وسطه ببین اسم داشت منم بیاری بیشه میریم بابا گوله گلت نخور میدم جلوی همون بانک دارت بزنن آقا دوتای عقبی وسطه یا نه؟ خیر آها همینو بگو سمه ما چقدر میشه ببین من از آبروی داشم برای خودم کیسه ندوختم بابا آبرومند چه خبرته؟ ببین اگر پیشنهاد من گوش بدی نه تنها ارسده عاشق خطری نداره بلکه همه ما به یه نوایی میرسیم حله بیمان پریار کناری میکشه و دره گوشی باش حرف میزنه اه کافی شاپی نشسته و مشغول نوشیدنه روی میز دوتا گل سر خود نمایی میکنن گارسون براش برشی از یک کیک میاره نگاهش خیره به جای نامعلوم میشه پریا و شیرین گشتی تو بازار میزنن و میرن پشت بیتری و یه طلا فروشی. شیرین هنوز توی کافی شاپه جرعه دیگه مینوشه اما هنوز غرق تصورات و دستی به گل روی میز میکشه یه ها شیرین و پوریا سر از گل فروشی در می رن. همچنان شیرین با تصوراتش مشغوله حالا با پوریا رفتن به پارک و با هم گپ میزنن و چیپس می خونن. شیرین نه به تماشای گل سرخ روی میزه شهرام پیمان هنوز در حال بحث و گفتگو هستن بابا ایش دوستتون داره رسمان من پیشنان دوزی از بانک میکنن ای خدا من شرمندم ای دشمنت شرمنده باشه آقا جون کسی که ده میلیار داره دیویست میلیون تومن پول یه ما دو دورشه تازه اصلا شاید نفهمه اگرم فهمید جهنم و زرر داره بچه نیست ای بابا آتکی فیز من چی میشه پاس؟ <تصفيق> <تصفيق> این <میدونجا> چیه؟ موقع به پرونده شما رسیدگی میشه. فقط فعلا آف <تصفيق> آقای رئیس، شما امشب برو یه خواب توپ بکن که فردا خودم میام بانک ریز نمرات نقشه‌مو روی دایره برات تاهر میکنم تا بفهمی کد تنکیه. گت اوت. به سلامت. پور یه جام رو ترک میکنه بی قزما ناز دستت دو آن فلان زای مرغی گرفته. به من چه رابطی داره؟ ای بابا وسط دعوا نخ تای می‌کنی؟ تکلیف ازدواج من چه می‌شه؟ حالا نهم بگم او. آگه بخویم بریم اون طرف آب او. او من دلم اینجا گیره. اون وقت من چرا نمی... نمیفهمی؟ با این پولی که تو داری دست و هرکی کی بذاری نه نمی‌گه. به فز اینم که با همین همین دوشیزه خانم می‌خوای ازدواج کنی؟ خودم در ترکیه در ترکیه برادی عروسی می‌گیرم که همه angosh بده همونن. به تمام وجود شهرام رو گرفته. تاپشه دو پوریا و حیات اوژانس بیمارستان فکری به ذهنش میرسه و شماره ای رو با موبایلش میگیره. وقتی که مالیه رو تماما دریافت کردم، فکر می‌کنه این باند میتونه همون باند قدیمی باشه. خوشحالم که به اینجا رسیدیم. از اولوبت هر کاری داریم گزارش کن، فقط ببین فردا چی مشغله تماشای تلویزیونی که موبایلش زنگ می‌خوره. آروم میره و موبایل رو برمیداره داداش شیرین گوش می‌یسته بله الو سلام خانم مفیدی صحب. میتونید صحبت کنید بله بفرمایید میخواستم قسم بپرسم با من ازدواج می‌کنین؟ الان برای اسبوت این خانم گوشی دستتونه بله بفرمایید آقای رئیس اینجوری وقتمونو همون هم فוריה صدا کنین نه بردیا من گفتم پوریا بردیا شمنده مثل آدمی زاد خواستگاه نکردم یه اولفتم سر اصله مطلب خواهش میکنم آخه من الان چی بگم یه چی فقط میخواستم بدونم هستی یا نه یه کلام قافلگی شدم آقایی رم بزانی زیر زیر. بحثی بیرم به زندگیه سايمه. ای کلامی که نمیشه نه نه اگه بگید تحصیل تازه من کلی صحبت دارم که بهاتون باید انجام میدم کلی حرفی که شما نمیشه چه حرفی خبر نداریم بعد بدونید ولی <تص> آخیش ما من دارم یواش یواش نگرانم نشید فقط الان میخوام بدونم میتونم روتو حساب کنم یا برادرش نشون نه برادرش این خودشو نشونه شیرین میده داداش موهاشو با هول خوش میکنه راستش نه نه ها اول ترجمیدم صحبتتونی بشتم بعد جواب ندم الو الو باشه قبول خوبی آقای رانو زنی بله بله کار دیگه نداری؟ نداریم نه نه ببخشید این موقعی شبو همین جلی شدم زابراتون کردم خدافز خدافس آقای رندزانی بود داشت به حال الهی وارد شد کرد و فاده ولی من بهش بله نگفتم او که بله داداش چون نشین این قد نگید بله من نگید جوابت بله است شما بگید داداش هلوی قربنون اون از با بله حیات دورم خواهد کچیکه کاش که انا آبا ما نره اونجه بودن این روزا میگه نگرانه هیچی نباشه خودم فرد و میشم میام اونجا ببینم حرف حسابش چیه اول سوپو و شیرین توی بانک کنار میز رئیس شبه نشسته و داره حرفاشو با پوریا میزن حرف حساب که شاید کلمه درستی نباشه منظورمه که شما کار چیه من, من کار من کاری که دارم میبینم منظورم کار بیرونه کاری که بشه باش باره خودشو ببنده متفتی که آم ببینید من حقیقتش بیرون از اینجا موتور تعمیر میکنم و خلیطون بشون از ببین رئیس یا بهتره بگم دومادی راستش من دارم یه برژک میسزم سر وام اونجا خوردم به خنس تو یه کاری کن وام اونجا بس ما درست ما میشیم یه شیرین بهت میدیم حاله ولی چه دیشب که به نگو ازش خواستگاری کردی تو نمیری کلی حال کردم آخه تو این دنیا مای ما هم یه دونه خواهد راستش محصولیتش برد جوجو شما هم سنگی نمی دست که بذارم تو دستت خیالم از این راحت شه ما میریم سی خودمون دنبال بوجک سازیم ببارا کشدم در انتوشی این, این بوجک چیز برد ببخش دیگه صبح اول صبحی قنادی دوسته باز نبود زیادم هست. شما کاری به ما نداری پس این مسئله شراکت بین خودمون میونه ان شاءالله صبر شریک زندگیتم با خانواده‌ات تشریف بیارین خودمون میبریم و میدوزیم و دستمون زنتو دستیم کوشی اینجا کاریو نداری خدا بزن پس ما افسیدگی ماده پدر یکم استاد میاد خواهش می‌کنم شیرین خجالت زده میاد کنار میز پوریان کارم م... بنا... <تصفيق> داشتید؟ خیر، کارت داشتم ولی دیگه ندارم میذاشتی نقود توی دهنه خیس بخوره دو روز سب می‌کردی، من بگم با چه حرفی دارم بعد به داشت میگفتی به خودت من داشتم دیشب با شما صحبت میکردم خودشم گفت فندو میام حالا مگه اتفاقی افتاده خیر. قرار شده با خانومتا بیاییم خدمتون برای عمر خیر بسلامتی حالا نوبت خانم محمدی شده که بوریا رو بازخواست کنه ببخشیم بله بله بهتر من میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم بله بله بفرماید من دو سال پیش با یه نفر نامزد کردم ما برای <تصفيق> اسمش مرد بود اما رسمش نامردی بود البته نامزدی ما سمه بیشتر طول نکشید به خاطر که نتونست بیشتر از اون نخشه مرد و مردونگی رو برای من بازی کنم تا موقعی که به شما جواب منفی دادم به من جواب منفی دادید؟ بله دیگه خب آهان یاد آمد شما همه مرد رو به همون چوبی میروندم که اون نامرد رو میروندن. تو این چهر رو سر کردم که خیلی آقلانه فکر کنم و چوب احساساتم رو نخورم. درگیری احساساتم نشد مسته همین اومدم هم بهتون بگم که اگه هنوزم رو خاسته و خواستگاریتون مستهرین جواب من مثبته. اگه خواستم که من از خودم اون نامرد به شما یه چیزایی بگم و البته اجازه بدین که منم از شما یه چیزایی بدونم توی یک جلسه رسم و معمول و معروف که حالا اسمش خاستگاریه تشریف بیارین تا به بول خودمون بانکی ها سابق بله من که حرفی ندارم یعنی از خوداش خدامم هست فقط موزیک هستش میشه اینو کارت به کارت یه جوری واریز کنیم به دیار افتتای سا. منه منظورم اینه من که که با کارت شناسایی نداره که حساب کنیم یه دیگه تو این واگیر سر و, و پیمان هم پیدا میشه ببخشید من ویژه دارم اجازه بدید برمیگردن سر کارشون بشینم بشین خب شریک قرار بود ما بیایم اینجا و رو بهت بگیم و همه ها رو انجام بدیم شریکت کو؟ بچ اون اگر اینجا باشه که گندش در میاد خالش اینجاست ممکنه بهش جک کنه ببینم تو میتونی امضای اخوی تو جل کنی دیگه خب که چی؟ <تصفيق> بکنم موقعی اومدی اینجا کلی از این امزاها زدی نه؟ چطور؟ ها نیفتی با موتور چک رو بگیر بده به یکی از همکارات که در وجه من و شعبه اون بر خیابون یه چیک رمزدار بگشن خب چی؟ لیونارد و چی؟ تو این کار رو بکن تو من بهت بگم خانم مفیدی چند از تشیف بیاره؟ چک رو تحویل شیری میده اگه ما برکانید این چک برای یه چک رمزدار برشید برای برشید برای پاکیو برشید نه ببخشید وقت جسارتا چون کار دارم یه ذره عجله دارم این شماره حساب بان که مقصدم پشت چک نمیشتن چشم خب حالا قشن بیا بشین ببینیم برای که یه چک رمزدار سادر بشه چه اتفاقایی میفته بعدشم امضای اخبی رو اینازید البته اول باید امضای معقعشهبت و فگر خالیش شهر چه البته باید بتونی امضای اونم چی کنیم. حالا که داری همینطوری بب و گ مردم رو نگاه میکننی همینطوری نگاه کن تا من برات دفش رو بگم. تا پنجشنبه آمار چند از مشتری های خرپول تو در میاره بعد خود پنجشنبه. هر چقدر کرم دست همشون بر که یه چند تا چی که رمزدار از شعبای مختلف به نام شهرام که جفت مون اعتماد داری میکشی بعد شهرام چه وصول می‌کنه با هم میریم صرافی که من قبلن همه هم کردم همه رو تبدیل میکنیم به دلار. بعدم هم تو چارده به تو ترکیه بعدش آه. دو تا بچه که قبلا تو کار قاچاق لباس بودن از ترکیه برای من لباس می آوردن ما رو از این منه مرز میکنن می کنن اون برای مرز الفا بید تخلق. آخه آخه نداره نبین نترس ببو میره. اون برای قضیه تمام اصناد و مدارک میگه که داداش شما بستریه به میگنانه آه الان من باید چی کار کنم آه من جایی تو بودم الان میقریدم تا فردا از همه خانواده الودا بای با. بای بفهمه دقیقی رئیس مونده فقط امضای خودت بس شما برمن کنید خواهیش میره بای جزب چک رو تحفیل میگیره و نگاهی بهش میندازه. رمزانی خواهی چک رو امضا میکنه <تصفح> امضای خاله شهرام مثل خودش شهرام ساده است داداش حله حالا امزای اخویت هم تنگش که دیگه ساده ساده میشه تا تهش. اینو بگیر تا پس بردم آماده باشه. قربون دستت برم شریک. ایشالله جبران کنم. پیمان پا میشه تو بلی. خب بابای رمزانی من از شما تشکر میکنم. من به شما و همکانانتون در این شبه که در این منطقه نمونه هستن افتخار میکنم برگون داداش بود جمع جور کن به شب شده و پوریا با یه چمدون از خونه میزنه بیرون پوریا تردید داره و نگرانه اما دل به جاده میده و از کنار جاده پیاده قدم میزنه دائم تصویر شیرین و مادرش میاد به ذهنش به دوش و خسته به هر سرم پا بذارم آخر رام شکسته بر سر یه دروهیم به دوش خسته به هر سرم پا بذارم آخر رام شکسته دخنه هزار تا خنجره رو قلب خسته من با روی دلم دوباره مرهم بزن باید برم، باید برم بگذرم از تا گمش رد پای من چون سرد تو لحظه های غربتام اسم منو سپتو کن برای برگشتن من عاشقم تو به به وقت عملیات سر میرسه پیمان یه پوشه جلو روی رمزانی باز میکنه و پوریا هم چیک ها رو میذاره داخل پوشه و پیمان با علامتی از رمزانی جدا میشه محمدی ناراحت و نگران و مسترب کنار باجه مفیدی ایستاده و توی فکره آخه ممنون عزیزم چی شده؟ چرا من و این بار پشیمونه پوریا با آبدارخونه میره و غرق فکر میشه محمدی هم دنبالش بارده آبدارخونه میشه داشتی به ثابت کردی که همه یه مرد نامرد نیستن هم محمدی یه سیلی به گوش پوریا میزنه و عینکش به زمین میفته از سنه باشه اغا ای دندویتون دردن کنه مدنم اغا دندو درد بید درد بینازر همین دندو نپوسی درد باید اپ بیش چون زیرا قران نمیارزه یعنی یک قران نمیارزه میزن او یکی دندو نمیارزه بیان او دلستش کن اجانس دیره بیرم در داره. برو گفر برو برو مقام تهنو بقیه ارازل گروهش تو جاده مشغول روندن ماشین هستن پیمان نگاهی به دور بریاش میکنه و نیشش باز میشه شهرام پکره و حسابی شاکیه بوریا هم تو فکر و ناراحت رانندگی سیبیلوی ماشین که حسابی سرخوشه موسیقی داخل ماشین رو عوض میکنه میگم آقا چرا؟ این پولایی که عقب ماشینه چندتا تا مومن میشه به جز شهرام و پوریا بقیه حسابی شادن دیدی آقای رئیم دیدی چقدر راحت میشه این خرپولا رو سرکیزه کرد حال شماری رئیس اگه میزدی یه بیلیار دیگرم و افروبی کردیم شیری شد جولتا اگه میگه چیری شد پس داداشو در خاله من خواسته بگید سیلیام که بهت زد یا سیلی شیری میگه تو بی خیال ازازت شدی؟ خوشباله راحت گذشتی او شهرم این دوتا؟ باداشه من قبلا دیده بودن نه تو؟ درده که منو یک جوری پیچ می‌کردن که نهت بگو اینا روانی هست گنده است اغمق دردی امونو گرفتم هایو هایو هایو هایو غروب شده و حسابی از شهر دور شده تو توقف میکنن و پیمان و دار و دستش میرن داخل رستوران. شهران هم میره دنبال بقیه که پشت دیوار چیزهایی از صحبت دار و دستی عرازل میشته میشنوه بر برمیگرده سمت پوریا دوتایی سوار ماشین میشن و راه میفتند پیمان و رفقاش هم می دنبال اونها پیمان و رفقاش هم می دوند دنبال اونها پیمان و رفقاش هم من نگرانی ایجا ندسته را داری با با ما حلود نرسیدیم ممکنه به هم لومو بدن به مرز برسید خیالت راحت من بهت میگم چی کار کنیم فیلمه شام سفارش بدیم که اینا شک نتونن به نسیم همه چی حله بابا آره بابا حله حله بابا چی ماشین کارت دارم چیش نبه بابا چی ماشین بریم داریم شامر رو بخوریم یک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 ناسی رو. نو به اون نارو بزنن. کیا؟ همون پیمان نامرد با اون دو تا قولتشم می‌خواستن زمین رو پیتخ تو از کجا می‌دونی؟ خودم شنیدم. اون پیمان نامرد رفاقتش هم میشد نامرد، نامرد، نامرد، نامرد، نامرد، نامرد. چه شرافت. او تو این نکنه. بچه‌محل اون بوده. به سید داداشو بزرگ‌تر هوامو تو محل داشته. ولی اینجا بهم ناروزت. نامرد، نامرد، نامرد. بی فیشرف حالا کجا داری میری؟ نمی... نمیدونی؟ نه خل خوب سرعتت رو کم کن. کم کن. بذار فکرامو جمع کنم. ببین ما باید یه زنگ بزنیم به خالت. ولی خوب نه نه منظوره من که یه راه داریم. ما باید با با باید با, با این پولا بریم خارج از کشور. آه بریم خارج از کشور. ولی چون به صورت قانونی نمیتونیم بریم بهترین کار اینه که برگردیم. برگردیم. نه نه نگره نباشه اگر پولا رو اول وقت برسونیم به بانک چون که شنبه صبح دستشون باشه ایچه اشکالی بیش نمیاد بنابراین باید اول وقت پولا رو یه جور برسونیم به بانک خب اول وقت شمبه و به خاطر این ستا قول تشنم که شده خودمون رو معرفی کنیم به پلیس فقط بعد پیه زندان به تنمون بمالیم بمالیم زندان کوچیک تو وطن خیلی بهتر از آزادی تو زندان بزرگ بروبت. جمعه معنیش چیه؟ آه. نمیدونم اینه نمیدونم. راستش من از همون اول جاده پشیمون شدم پوریم وقتی دیدم دیگه تهران و خونم و خونوادم و زنم وقتی نمیتونم ببینم که چه ای داره اما تو واسه چی؟ منم یه چیدهای پشت سرم گذاشتم که یه جوری وابستگی یا بهتر بگم دل بستگی یا چیچی بعد برگردم سیلی شیری <تصفح> ای شیری ای شیری خاله. خاله خاله خاله سه عروس و سه دومات کنار هم ایستادن. شهرام گردن بند طبیه بردی ها رو که حسابی داغون و باند پیچی شده باز میکنم گردن بردی می ها و شهرام دوباره اونو میبنده تا گردن بردی ها سر جاش بند شد داداش، حتما تو با کنم مثلا یه تا آقا این گردنی داداش رو با میکنی شده روشی تا زایستی نه تا بای خیریم بشمیاد اینطور یه ذرا سرسنگیتر شده باست کن اینو تو ها اه اه اه اه بلش کن بلش منو تو در آوردی ببند ببند برون نگاه بگیر بگیر سه بخندی دو یک هم از رادیو فیلم سیلی شیرین که با تلاش فرشاد آذرنیا سردبیر و, و کننده علی حاجی نوروزی صدا بردار و من آرمان قفاریان نویسنده و راوی به پایانش رسید. امیدواریم که تونسته باشیم لحظات شیرین این رو براتون رقم بزنیم. تا رادیو فیلمی دیگه مبازه به خودتون باشین، شیرنی زیاد نخورین، تحت هر شرایطی لبخند فراموش نشه. خدا نگهدار.